قصل دوم کوزیما بالای بلوت بود شاخه ها تکان می خورد و به پلهایی می است که تا دور دست ها کشیده شده باشد نسیمی می وزید و خورشید از لابلای برک ها میتابید. باید دستمان را سایبان چشمانمان می کردیم تا بتوانیم توانیم را ببینیم و او از بالای درخت همه جا را تماشا می کرد هر آنچه او از آنجا می دید، حالتی دگرگونه داشت. و این نخستین سرگرمی آن بالا بود. کردها و راه میان باغ، بوته های کاملیا و هرتنسی میز فلزی باغ که آن قهوه میخوردیم همه و همه به شکل دیگری به چشمی آمد. هرچه دورتر می شدی، تونکتر تنکتر می شد. جالیس های سبزیکاری به صورت تکه زمین های پله پله دیده میشد که بر دیوارهای سنگی سوار بود. دامنه تپه تیره تر و پوشیده از درختان زیتون بود. سپس آبادی امبروزا با بام های سفالی و لوحی به چشم می آمد. پایین تر از آن نوک دکل کشتی ها دیده میشد. بندرگاه آنجا بود. دورتر از همه در ته افق دریا بود. کشتی باد آهسته می رفت. بارون و ژنرال پس از نوشیدن قهوه به باغ رفتند بوته گل سرخی را تماشا میکردند و چنین وامین مودند که اعتنائی به کزیمو ندارند بازوی یکدیگر را می و سپس از هم جدا می شدند و با تکان دادن دستها گفتگو گفت می کردند. من به بهانه بازی پای بلوت می رفتم می خواستم توجه کزیمو را به سوی خودم جلب کنم اما او از من دلگیر بود. بی حرکت آن بالا نشسته بود و دور دست را تماشا میکرد. دست از کوشش برداشتم و رفتم و پشت نیمکتی نشستم تا بیان که او مرا ببیند تماشایش کنم. برادرم به کسی می که در حال نگهبانی باشد. گرد, گرد خود را تماشا میکرد و چیز مهمی به نظرش نمی رسید. زنی سبت به دست از نارنجستان می مهتری، دم یابوی خود را گرفته بود و از تپه بالا می رفت. یک دیگر را ندیده بودند. زن با شنیدن صدای سمهای چارپا برگشت و رو به جاده خم شد. اما دیگر دیر شده بود. زن به خواندن پرداخت. مهتر که از پیچ گذشته بود شلاقش را به صدا در آورد و یابو را هین کرد. دیگر خبری نشد. اما کزیمو هر دوشان را میدید کشیش فوشلافلور از راه میان باغ گذشت. کتاب دعایش باز بود. کوزیما چیزی را رو از روی شاخه برداشت و روی سر او انداخت. نفهمیدم چه بود. انکبوتی یا تکی از پوسته درخت. به کشیش نخورد. کوزیما شمشیرش را درون سوراخی فرو کرد. زنبور خشمگینی بیرون آمد. کوزیما با کولاحش او را تاراند و با نگاهش زنبور را دنبال کرد که رفت و روی بوته کدوئی نشست. جناب وکیل با چالاکی همیشگی از خانه بیرون آمد. از پلکان کوچک باغ بالا رفت و میان تاکها ناپدید شد. کوزیمو یک شاخه بالاتر رفت تا ببیند او کجا می رود. صدایی از لابه‌لای برگ‌ها شنیده شد و ساری به هوا برید. کوزیمو ناراحت از اینکه تا آن هنگام متوجه پرنده نشده بود، نگاهی به میان برگ‌ها انداخت تا شاید پرنده دیگری را ببیند. اما نه، دیگر چیزی آنجا نبود. ناروانی نزدیک بلوت بود. برکایش تقریباً به هم می رسید و شاخه یکی در نیم متری شاخه دیگری بود. برادرم بی هیچ دشواری خود را به ناروان رساند و تا نوک آن رفت. هرگز از این یکی بالا نرفته بودیم. زیرا شاخه هایش بسیار افراشته بود و نمی از پای آن بالا رفت. با یافتن شاخه های نزدیک به هم میشد از ناروان به یک درخت خرنوب و از آن به یک درخت توت رفت. بدینگونه بود که دیدم برادرم بر فراز شاخسار باغ از درختی به درخت دیگر می رود. چند شاخی توت بزرگ از دیوار باغمان بیرون رفته بود. آن سوی دیوار باغ خانه ریوالونده بود. خانواده مارکی دو ریوالونده بر امبروزا سروری می کرد و ما با آنکه همسایه بودیم هیچ آشنایی به آنان نداشتیم. این خانواده از چند نسل پیش، از برخی امتیازهای فعودالی برخوردار بود که پدرم آنها را حق خود میدانست از این رو رابطه ی میان دو خانواده چندان دوستانه نبود و دیواری به بلندی بار و باغهایشان را از هم جدا میکرد. نمیدانم چه کسی آن را افراشته بود. مارکی یا پدرم؟ از این گذشته، خانواده ریوالونده به شدت از باغ خود نگهداری میکرد و به آن میبادت. و گفته میشد که گلها و درختان بسیار کمیابی در آن باغ یافت میشوند. پدر بزرگ مارکی که شاگرد لینه بود از همه خویشاوندان بیشماری که در دربارهای فرانسه و انگلیس داشت خواسته بود تا گرانبهاترین بههاترین ها را از مستعمرات برایش بفرستند. سالهای سال کشتی در بندرگاه برازا پهلو می و گونیهای های بعضر دسته های قلمه بوته ها و گلدان و حتی درختان بزرگی را که ریشهشان در خاک بسته شده بود برای خانواده ماارکی میآوردند گفته میشد که باغ آنان آمیزه از جنگل های هند آمریکا است و حتی گیاهانی از آسیای دور را در خود دارد. همه آنچه از فراسوی دیوار بلند به چشم ما می آمد برک های تیر رنگ درختی بود که به تازگی از مستعمرات آمریکایی آورده بودند و این درخت همان ماگنولیا بود. بر شاخه های سیاه آن گل های سفید و درشت می شکفت. کزیما از روی درخت توت بزرگمان خود را به بالای دیوار رساند چند قدمی روی لبه دیوار راه رفت. سپس خود را به برک ها و گل های رساند رسند و از آن سوی دیوار آویزان شد. دیگر او را نمی دیدم. و آنچه را که از این پس تعریف می کنم، مانند بسیاری دیگر از گوشه های این داستان یا خود کزیما با برایم بازگو کرده است و یا اینکه خودم از این و آن شنی کازیمو بالای ماگنولیا بود با اینکه شاخه های آن درخت بسیار در هم پیچیده بود بالا رفتن از آن برای پسر کارآمدی چون او کاری نداشت شاخه ها نازک و شکننده بود اما سنگینی او را به خوبی تحمل می کرد نوک کفش های کازیمو شاخه ها را می و زخم سفیدی را روی پوست سیاه آنها رقم می زد باد برگ را میداد و گاه روی تیره و مات و گاه روی صاف و درخشنده آنها را می نماید. و عطر دلنگیزی پیرامون کازیمو پراکنده بود. سراسر باغ اتراگین بود. کزیمو هنوز نمی توانست آن شاخساران انبوه و در هم را ببیند. اما بوی آن را میشنید میکوشید می کوشید بوهای گوناگون آن باغ را یکی یکی بشناسد. بوهایی که پیشتر از آن نیز با باد به باغ ما می آمد و انباشته از رازهای نگشوده باغ همسایه بود. سپس کزی توانست است، را تماشا کند و درختانی را دید که برخیشان برک های پهن و درخشان داشتند. انگار که پردهای از نم رویشان نشسته بود و برخی دیگر برک های نازک و نکتیز داشتند و تنهایشان بعضی صاف و بعضی زبر بود. سکوت جرفی بر باغ چیره بود. ای گنجشک کوچک به هوا برید. سپس، صدای نازوک دخترکی آمد که می‌خند: او لا لا لا تاببازی کوزیمو زیر پای خود را نگاه کرد. از درخت بزرگی تابی آویخته بود که تکان میخورد و دخترک موبور شش هفت ساله‌ای روی آن نشسته بود. گیسوان دخترک بالای سرش جمع شده بود. پیراهنی آبی به داشت که برای کودکی به سن او اندکی مسخره جلوه کرد. و با هر حرکت تاب دامن پرچین و پرستوریش تکان می‌خورد. دخترک با چشمان نیمه بسته و سر افراشته روبروی خود را نگاه میکرد. گهگاه سر خود را به سوی یکی از دستهایش که هم تناب تاب و هم سیبی را گرفته بود خم می کرد و گاز کوچکی به سیب می‌زد. هر بار که تاب به نزدیکی زمین می رسید، پاهای کوچک خود را به زمین می تا تاب را تندتر کند. تکیه از پوست سیب را از دهان بیرون و اند او لالا، و این همه را چنان میکرد که انگار نه به آوازی که میخاند و نه حتی به سیب علاقه چندانی نداشت. بلکه فکرش جای دیگری بود. کزیمو از بالای ماگنولیا خود را به پایین ترین شاخه های آن رسانده بود. دو پایش روی دو شاخه نزدیک به هم بود و آرنج هایش روی شاخه دیگری تکیه داشت. مانند کسی که از پنجری سر بیرون کرده باشد. چهره دخترک با هر حرکت تاب به نزدیکی صورت او می رسید. دختر هنوز او را ندیده بود. ناگهان چشمش به او افتاد که کلاه گوش بر سر و پاتا و به پا روی شاخه های بود. گفت، او سیب از دستش افتاد و پای درخت قلتید. کزیم شمشیرش را به دست گرفت. خود را به نوک پایین ترین شاخه رساند. خم شد و با نوک شمشیر سیب را برداشت و آن را به سوی دخترک گرفت که در این میان یک بار با تاب رفته و برگشته بود. کوزیما گفت بگیریدش. کسیف نشده. فقط یک طرفش کمی له شده. دخترک موبور ناراحت بود از اینکه در برابر پسر ناشناس بالای مگنالیا آن همه شگفتی از خود نشان داده بود. دوباره حالتی جدی به خود گرفت و با سر افراشته گفت شما دزدید؟ کزیمو دست پاچه گفت؟ دوست؟ سپس فکری کرد و از این عنوان بدش نیامد گفت؟ بله اشکالی که ندارد. آمده ای چه بدزدید ؟ کزیمان نگاهی به سیب نوک شمشیر انداخت به یادش آمد که ناهار نخورده بود گرسنه نبود گفت؟ این سیب را و با شمشیر به کندن پوست سیب پرداخت بی اعتناب مخالفت پدر و مادرمان شمشیر خود را همیشه بسیار تیز نگه می داشت. پس شما میوه دزدید؟ برادرم به یاد دسته کودکان توهی دست امبروزا افتاد که از دیوارها و پرچینها بالا می رفتند و به جان درختان میوه میافتادند. همواره به او گفته شده بود که این دار و دسته را تبه بداند و از آنان دوری کند. برای نخستین بار با خود گفت که زندگی آن کودکان باید بسیار آزادانه و قب باشد. از آن پس می توانست با آن ولگردان دوستی کند و یکی از آنان باشد. گفت درست است. سیب را چند تکه کرد و به خوردن پرداخت. دخترک موبور خنده ای سرداد که به اندازه یک رفت و برگشت تاب طول کشید. نه من خودم همه بچه های می و دوز را میشناسم. با من دوستن. پاهرهنند و پیراهنشان پاره پاره است. نه پاتاوه دارند و نه کلاه گیز. رنگ روخ برادرم به سرخی پوست سیب شد. دخترک نه تنها موهای پودر زده ای او را که خودش هیچ علاقه به آن نداشت، بلکه حتی پاتاوه هایش را هم که او بسیار دوست داشت، مسخره می کرد. همچنین با حالتی تحقیرآمیز او را با ولگردان میوه دزدی مقایسه می کرد که خود او تا لحظه پیش تر تبهکارشان از همه بدترین که کوزیمو میدید دخترک باغ ریبالنده که عداهای ملک وار دارد با بچه های میوه دوز دوست است و او را به چیزی نمی این همه او را دست خوش سرخوردگی و شرم و رشک می کرد دخترک همچنان که روی تاب نشسته بود به آواز می گفت هه هه هه به شدت به کوزیمو برخورده بود پریاد زد من از آن دوست های که شما میشناسید نیستم اصلا دوست نیستم این را گفتم که نترسید چون اگر واقعا می من کیم از ترس میمردید من راهزنم یک راهزن خیلی بد جنس دخترک همچنان با تاب میرفت و تا نزدیکی چهره او می گویی می خواست نک پایش را به او بزند نه بابا پس توفنگتان کو؟ راهزن ها همه تفنگ دارن. تپانچه که ندارید. من راهزنها را به چشم خودم دیدم. به ریوالونده که می رفتیم بیست بار کالسکه ما را نگه داشتند. رئیسشان را که ندیدید. رئیسشان منم. رئیس راهزنها فقط شمشیر دارد. و شمشیر کوچکش را نشان داد. دخترک شانه هایش را بالا انداخت. گفت. رئیس راهزنها را می شناسم. اسمش جوانی خلنگ است. همیشه در عید میلاد و عید پاک برایمان هدیه می آورد. کوزیمو دو حس کرد که کینه خانوادگی چون موجی در درونش سر می کشد فریاد زد: "آها! پس پدرم راست میگوید که مارکی ریوالونده حامی همه دزدها و قاچاقچیهای منطقه است." دخترک به نزدیک زمین رسیده بود. به جای آنکه دوباره تاب را به شتاب درآورد، با یک حرکت خشک پاهایش، آن را ایستاند و از آن پیاده شد. تا به خالی جهشی کرد و ایستاد. دختر خانم انگشته اشارش را به حالت تهدیدآمیزی آمیزی به سوی پسر بچه گرفت و گفت: « فوراً بیایید پایین به چه اجازه به زمین های ما پا گذاشته ایید؟ کزیما با همین تندی گفت؟ پایین نمیآیم. روی زمین شما هم پا نگذاشتم. و اگر همه دنیا را هم به من بدهند نمی گذارم. دخترک با حالتی بسیار آرام بادزنی زنی را که روی نیمکتی از خیزران بود برداشت و، با آنکه هوا هیچ گرم نبود به باد زدن خود پرداخت. در این حال بیتابانه قدم میزد و می گفت خدمتگارهای ما را صدا می زنم که بیایند و کتکتان بزنن تا شما باشید که دیگر پا به خانه ای ما نگذارید. لحن دخترک پیاپی تغییر می کرد و برادرم هر بار از کوره در می رفت. فریاد زد این جایی که من هستم زمین شما نیست. مال شما نیست. دلش می خواست این جمله را هم بگوید که. از این گذشته چون دوک هستم ارباب همه ناهیم اما جلوی خودش را گرفت. اکنون که سرپیچی کرد و از خانه گریخته بود، هیچ میلی به تکرار تکیه کلام پدر نداشت. همیشه فکر کرده بود که ادعای دوکی پدرمان نوعی وسوسه بیمارگونه است. پس چرا میبایست خود نیز آن را تکرار کند؟ و چون نمیخواست از آنچه گفته بود برگردد، باز خیال بافانه گفت اینجا مال شما نیست. درست است که زمین مال شماست و اگر از درخت پایین بیایم روی زمین شما هستم اما این بالا نه هر جا دلم بخواهد میروم یعنی اینکه آن بالا مال توست البته این بالا همش قلمرو من است با حرکت گزرهای دستی شاخه ها برگ ها و آسمان را نشان داد همه شاخه ها قلمرو من است حالا اگر می توانی برو و بگو که بیایند و بگیرندم پس از این همه لافزنی انتظار داشت که دخترک دوباره مسخرش کند. اما درست عکس آن شد. دخترک ناگهان کنچکاف شده بود. پرسید. این قلم رو تو تا کجاست؟ تا هر جا که بشود شاخه به شاخه رفت. اینجا آن طرف دیوار باخهای زیتون، بالای تپه، آن طرف تپه، جنگل، حتی زمینهای اسقف. به فرانسه هم میرسد. زیمو که از جغرافیا چیزی جز نام نمی دانست که مادرمان درباره جنگ جانشینی به زبان می آورد، گفت حتی تا لهستان و سرزمین ساکس، اما من آدم خود خواهی نیستم، تو را هم به قلم را هم دعوت می کنم. دیگر به هم تو می گفتند، این را دخترک آغاز کرده بود. با بادزن باز روی تاب نشست و پرسید بگو ببینم، این تاب است. گفت. تاب مال توست، اما چون به این شاخه آویزان است، مال من هم هست. وقتی که رویش نشسته ای، اگر پایت به زمین بخورد، توی ملک خودت هستی. اما وقتی که توی هوایی در ملک منی. دخترک با دو دست تنابهای تاب را گرفت و رو به هوا پرید. کوزیمو خود را به شاخهای رساند که تاب از آن ویخته بود. تنابهای آن را به دست گرفت و هرچه تون تر به حرکت در آورد. می ترسی؟ من؟ نه، اسمت چیست؟ من؟ کازیما، اسم تو؟ ویولانته، اما ویولتا صدایم میزنن به من هم میگوین مینو، کازیما از آن اسمهای پیر مردی است خوشم نمیآید از کازیما؟ نه، از مینو میتوانی کازیما صدایم کنی؟ به هیچ وجه، ببین، باید قرار و مدار ما خوب روشن باشد منظورت چیست؟ با هر یک از گفته های ویولتا ها گیج میشد می گویم که من می توانم به قلمرو تو بیایم و مهمان باشم باشد هر بار که دلم ام خواست میایم و میروم تو هم تا وقتی که بالای درخت های خودت هستی عزیز و محترمی اما همین که پایت به زمین باغ من رسید تو را میگیریم و زنجیر میزنیم و برده من می شوی باشد من هیچ وقت پایم را به زمین نمی گذارم. نه در باغ تو و نه در باغ خودمان همه اینها برای من حکم قلمرو دشمن را دارد تو برای دیدن من میایی بالا. از تو و دوستان میوه دزد پذیرایی میکنم. همینطور از برادرم بیاجو. گرچه یک کمی بوستر است. بالای درختها برای خودمان ارتشی درست میکنیم و زمین و مردمانش را آدم میکنیم. تاب دیگری نزدیک تاب ویولت و از همان شاخه آویخته بود. تناپای آن را به هم گره زده بودند تا به تاب دیگر نخورد. کزیمو از یکی از این تناپا پایین رفت. در این کارتر دسته به سفارش مادرمان تمرین ژیمناستیک می کردیم. گره را باز کرد و روی تاب ایستاد. سپس پاها را خم کرد و سنگینی تن خود را به جلو انداخت و تاب را به حرکت درآورد. بدین گونه هرچه بالاتر رفت، تاب ها که در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کردند، به یک اندازه بالا می رفتند و در میانه راه به هم می رسیدند. ویولت فریب فریبکارانه گفت اگر بنشینی و تاب را با پایت حرکت بدهی خیلی بالاتر میرو، کزیمو در آورد. دخترک با خنده عشوهگرانه ای گفت برو پایین و کمی هلم بده خواهش میکنم؟ نه قرار این است که پای من به هیچ قیمتی به زمین نرسد کزیمو کم کم گیج می پسر خوبی باش نه <تصفيق> نزدیک بود گل بخوری اگر پایت را به زمین میگذاشتی همه چیز را از دست می فیولتو از تاب خود پایین رفت و به هل دادن تاب کازیمو پرداخت. سپس ناگهان تاب برادرم را با دو دست گرفت و آن را چرخاند. اما خوشبختان کازیمو تنابها را محکم چسبیده بود. وگرنه چون تاپاله نقش زمین می شد. از تناب بالا رفت و فریاد زد. خاین! بالا رفتن بس سختتر از پایین آمدن بود. به ویژه که دخترک با بدجنسی تنابها را به هر سو می کشی. کوزیمو سرانجام خود را به شاخه ستبری رساند و نشست. عرق چهره را با کراوات توری پاک کرد. <تصفيق> نتوانستی کلک بزنی. چیزی نمانده بود بیفتی. مرا بگو که تو را دوست خودم می‌دانستم. جدی باورت شده بود. دوباره به باد زدن خود پرداخت. صدای تیز زنی آمد که داد میزد. ویولانته! با کی حرف میزنی؟ با یک جوان امه جان بالای درخت به دنیا آمده تلف شده و نمی تواند پایش را به زمین بگذارد کزیمو سر شد نمیدانست دخترک او را مسخره می کند یا به وسیله او اش را یا هنوز به بازی ادامه میدهد و یا اینکه هیچ اعتنایی نه به او و نه به عمه و نه به بازی ندارد در این حال زن به درخت نزدیک شده بود و با عینک دستیش او را ورنداز می کرد که انگار توتی قریبی بود آها! این که از ای پسرهای لاورس است؟ بیا ویولانته! کزیما به شدت احساس خاری می کرد. زن او را با حالتی بسیار طبیعی و بیعتناش شناخته بود. بیان که حتی از او بپرسد آنجا چه می کند. و دخترک با یک ندای ساده او را رها کرد و رفته بود. بیان که حتی نگاهی به پشت سر بی اندازد. یعنی اینکه او را آدمی بی اهمیت می دانستند. کسی که کمابیش وجود نداشت. بدین گونه خاری و شرمندگی آن بعد از ظهر فراموش نشدنی را تباه میکرد. اما نه، دخترک اشارهی به امه کرد و او سر خود را پایین برد و دخترک چیزی در گوشه او گفت. امه دوباره عینک دستی خود را به سوی کزی گرفت. گفت، خیلی خوب آقا پسر می یک فنجان شکلات با هم بخوریم. به این ترتیب ما هم میتوانی با شما آشنا بشویم چون میبینیم که از دوستان خانواده شدید. وزیر چشمی نگاهی به ویولت انداخت اندخت. کوزیمو خوشگش زد. دلش به تپش افتاد و با چشمان از هم گشوده به امو و برادرزاده خیره شد. خانواده مارکی ریولانده و امبروزا، پر افاده ترین خانواده منطقه، او را به خانه خود دعوت می‌کرد. احساس پیروز ای جانشین خاری شد که لحظه پیشتر دوچار با دعوت شدن به خانه کسانی که همواره پدرش را تحقیر کرده بودند، انتقام خود را از پدر می گرفت. از این گذشته، ویولتا به نفع او پادرمیانی کرده بود. یعنی اینکه رسما دوست ویولتا میشد و از آن پس میتوانست با او در آن باغی که به هیچ باغ دیگری نمیمانست بازی کند. کزیمو این همه را در یک لحظه دریافت، اما در همان حال حس دیگری کم کم در او بیدار میشد. که آمیزه از کمرویی و غرور و گریزپایی و سرکشی بود در گیر و دار این احساسهای متضاد دست به شاخهی انداخت که بالای سرش بود از آن بالا رفت و خود را به جای پر برگیره به درخت دیگری رفت و نابدید شد